بسم الله الرحمن الرحیم صحبت جلسه قرار درباره كلا مراحل و مقامات سید و سلوک عرفانی باشد ما قبلا در مورد مسائل عرفانی صحبت داشتیم صورت تخصصی موضوعات حالات مسائل حوادث مثبت و منفی حق ها و ابتال های سلوک خب صحبت مطالب زیاد گفته شده نوشته شده اینجا اصلا میخواهیم همه مباحث رو جنبندی کنیم به صورت یک دستگاه عرفانی از اول تا آخر به طور کلی ید درد به می‌کنیم. میکنیم یعنی طبیعین سیر و سلوک عرفانی به عنوان ایدولوژی اصلا سوال که آیا نیازی به طبیعین ارفان به صورت یک دستگاه فکری یا فلسفی و عرفانی نظری هست یا نیست؟ خب ما میدونیم که در ادبیات ارفانی ما بلخی از ولافور که البته روش نوخی کم هست، یه چند انگشت انگشتماری چنین کاری رو کردن یعنی سعی کردن که مراحل و مراتب و مقامات سری وصول عرفانی رو طبقه بندی کنن، شعر بدن، تفسیر کنن. مثلاً عبتار این کار رو در منطقه ترش انجام داده مولوی در خود مصنوی همین کار رو دقیقا کرده ابن عربی دو سه چهار نفری بیشتر نیستن که این کار کردن حاج عبدالله در مناظر ساحلینش این کار کرده در سطح میدانش ولی متاسفانه همه اینا زبان کاملا تخصصی و اکثرش هم به زبان شیر هست به زبان استعاره و مثال و حکایت که خود مستزم تفسیله برای همینه که امروز مثلا یک جوان بخواد بدانده که اصلا سیرسولک عرفانی چی هست یک کسی که میخواد زندگی عرفانه داشته باشه این چنو زندگی چه موزلاتی داره متاسفانه هیچ کتابی موجود نیست در کشوری که کشور عرفانه و بخش عظیم از ادبیاتش هم عرفانی چه عرفان مصنبی رو کی که می دونه بفهمیم حتی بزرگان ما هم تو چه مسئله داره حدف <تصفح> ما این استش که یه رو بکنیم که براورد یک نیازی مخصوصا برای نسل جوان باشه و منطقه به زبون خودمون به زبان امروز به فرهنگی که میشه شه زندگی کرد نه ازواز تخصصیم <تصفح> پس این نیاز وجود داره خب اصلا قبضا چیزی چیزی بایستی این سال رو پاسخ بدیم که عرفان چی هست و زندگی عرفانی و سلوک ارفانی چه موزنه هستش در این مورد قبضا صحبت کردیم برای همین این مسائل رو سرمی می‌کنیم. کلیات فقط ما میخوایم اینو دستبندی کنیم بسیت سیستم و نظام فکری در بیاریم شهرش در آثار ما هست عرفان به زبان ساده یعنی معرفت نفس خودشناسی شناخت اصرار وجود شناخت وجود خیشتم در کل عالم هستی زندگی عرفانی یعنی زندگی که در آن انسان در جستجوی حقیقت ذاتی حقیقت جاودانه و الهی خودش در این جهان هست خب اگر این هست بنابراین پس سیرسولوک عرفانی برای هر انسانی جز واجباته یعنی کسی که زندگی عرفانی نداره سلوک عرفانی نداره در واقع باز که زندگی انسانی نداره یه زندگی نیمه غلیزی در واقع داره که فقط با یک سری احساسات انسانی همراهه بتونه که این احساسات اصلا درش نقشی تنیم کننده داشته باشه نبرای سری سلوک عرفانی سلوک همطور که خود لغتش این معنا رو میده یعنی راه، حرکت، که راه، روی هم زندگی راهی هست که از تولدو شروع میشه روی زمین تا مرک این راه زمینش هست خب این راه مسلمان مراتب داره مثل هر سفری که انسان از شهری به شهری از کشوری به کشوری میخواد بره خب یک نقشه ای رو میاره جلوی خودش ببینه از کجا باید شروع کنه نزدیک ترین راه به مقصد چه راهیه چه شهرهایی بین راه هست اصلا شهری آبادی هست یا نیست بیابانه پینراد دوز داره آبادی امنیت داره نداره قضاش با چه کنه تو شیلاش چه باشه سری صدگردخوانی و دانستن کلی این نقشه و بلد بودن این نقشه به طور کلی ازاری نظری از جزء ملزومات این راه است که انسان بدون از کجا میخواد شروع کنه اصلا میخواد کجا بره و از چه مس... مسیرهایی قرار هست به طور کلی بگذره اوپنا بر کسی که اصولا احساس و درد شناخت خودش رو به عنوان احسان داره انگیزهی برای سریسولگ ارفانی دارد. زندگی ارفانی زندگی کسی است که با زنده بودنش با بودنش با آدم بودنش مسئله داره به زبان برای همینه مسئله انسان بر روی زمین عارفان هستند به زبان خود ساده مسئلهشون با خودشونه و تمامیت انسان بودن خودشونه و کل حیات و هستی و زندگی که دارن میکنن مسئله دارند همه مسئله دارند مونتا مسئله اکثر انسان ها مسائل غریزی ران اقتصادی سیاسی ولی زندگی عرفانی پاسخگویی به مسئله وجوده هستیشناسیه دارنی هستی هستیشناسی انسانیه عرفان یعنی هستیشناسی انسانیه من چیستم؟ برای چه چی خلق شدم؟ برای چی دارم زندگی میکنم؟ قرار چه کار کنم؟ اصلا من تو این کائنات چه کارم؟ و مقصدم قراره به کجا برسه؟ این ها موزلات سری عرفانی هستش و کسی که سالک و رونده این راه میشه خب طبعا ب باعثیه... دیدی افاقی دیدی و وسیعی باستی داشته باشه از این راه، از کلیت این را از حوادث این را و از مراحل این را حدا این هستش که این رو طور کلی اینا تبینی داشته باشه خب طبعا مسئله خود من من کیستم من چی هستم چه کارم در این دنیا اصلاً برای چه خلال شدم میخوام کجا برم خب این یک مسئله ذاتی برای هر انسانیه شما نگاه کنید هر بچهی این سوال رو طبع ساله بیشتر داره یکی از بچه‌ها به از این که به سن شعور و ادراک میرسه، اولین سوالی که پدر مادرش میکنه اینه که مامان بابا من کجا بودم قبلاً آ کجا بودم مادر؟ هیچکس هیچ کسی به او یاد نداده. درسته؟ متاسفانه پدر ها این سوال جدی نمیگیرن، بس اصلا صحبت و سوال رو عوض میکنن که اصلا از دیر این و از این درن. و بچه مدت‌ها با این سوال در خودش دست و پاچه تو اینکه هیچ رانمایی نیست، هی پاچنه خیلی نیست کنم کنم این سوال رو فراموشون کنم اگر چنین هست، بنابراین پس زندگی عرفانی زندگی انسانی ذاتیه، قریزیه در واقع در واقع عرفان غریزه روحانی انسانه من چیستم، از کجا اومدم، کی منو خرق کرده و من اینجا اومدم چه کار کنم، کارم چیه، اینانی عرفان خب طبعا هر انسانی این مسئله رو با خودش داره بعضی خیلی سریع فراموش میکنند اصلا بعضی ها کم و بیش این رو با خودشون دارن در بیکاری با خودشون نجوا میکنند این مسئله رو و سعی میکنن در حد ادراک خودشون به زندگیشون هدف بدند در حقیقت زندگی عرفانی نیست زندگی هدف بدند اون هدف هدفی فوق زندگی همه هدف دارند منطق اهداف همه اقتصادی اجتماعی سیاسی. این نه هدفی که تمامیت زندگی رو بتونه ترجمه کنه به صاحبش تبدیل کنه به یک حقیقتی که بتونه او براساس اون زندگی کنه و بگه که این زندگی کردن ارزش رو داره با بیان دیگه نیاز به زندگی عارفانه داشتن پاسخ به این سواله که آیا زندگی ارزش زیستم داره یا نداره آه؟ فقط انسان میتونه این سآلو بکنه و اگه نکنه بایست که از انسانیت واقعا کم داره چرا؟ برای اینکه انسان یک جانوری مریض درمانده مستضعف و مفلوکه و برای ارضای همون نیازهای غریضی خودش بیش از, از, از هر حیوانی بازی زج بکشه جمع بکنه یعنی حیوان واقعا دیگه از ضعیفترین، انسان دیکی از ضعیفترین حیوانات است برای همینه، این خود این علتی هست تا او خوش ببرسه آیا این زندگی از این زیستان داری یا نداری؟ چرا؟ خوب. من برای سی کردن شکرم خودم ها اینقدر باز درست بکشه واسه واقعا صرف میکنه؟ در واقع پاسخ به همین سوال انگیزه احساسات، افکار و همیگه های عرفانی و سیرسودو که عرفانی خب آدم ها بسته به فرهنگی که در روشت کردن بس به اهمیتی به این سوال در خودشون میدن مسلما در از آغاز نوجوانی دوران جوانی سعی میکنن بالاخره کاری بکنن برای پاسخ به این سوال تا تحقیق بکنن بپرسن مطالعه کنن تفکر کنن بس سعی کنن که یک معنی ورای این زندگی برای زندگی کنن چرا هر کسی میدونه که میمیره خب پس من برای چه زندگی کردن خب این زندگی به, در... به شرطی ارزش زیستن داره که یک حقیقتی بیشتر از این زندگی بوده باشه در زندگی چرا برای که این زندگی خوب تموم میشه با قبل ختم میشه خب بنابراین عرفان یه چیز خیلی کاملا تبییه برای انسان افکار عرفانی سالم ترین افکار انسانی انسانی ترین افکار انسانیه یعنی کسی که موزعه عرفانی و سوال عرفانی نداره در واقع واسه کو انسانیت درست جایی پیدا نشده نبوده تا اینکه انسان‌ها رو جدا با خودش نداره و این مقوله آزارش نمیده واسه این مسئله را واقعا این روحش تحصیل شده رفته شاید اصلا رخت برباسته بقول مولوی همون شعر معروفی که علی ما حفظیم در واقع واسه این بیان احساسات عرفانیه که از کجا اومدم آمدنم بحر چی بود به کجا میرم و ما آخر منو نه نه میوطنم این سوالی این که از کجا اومایدم به کجا میروم لو بقول ساده ردایات روبن مرغش در واقع واسه بیان خیلی ساده و ملموسه کل انگیزه عرفانی در انسانه این جمله معروفه در بفکور که میگه که من میترسم که بمیرم قبل از اون که من خودم رو شناخته باشم که من چی هستم اصلا چه کارم این یعنی عرفان داره در سهل تلاشای و خود بخودی که انسان برای پاسخ به این سوال تو زندگیش داره دست و پا میکنه در مسیر این زندگی به میزانی که دنبال این سوال خودش هست و دربارهش تفکر میکنه مسلمان به انسانهایی در زندگیش میرسه آه. به برخی از انسانهایی که اونها به طور تخصصی به این مسئله پرداختند و برای این مسئله دارن زندگی میکنند و حدبشون از زندگی پاسخه به این سوال هستش به اینها میگن ورفا نیکسانی که تخصصشون زندگیشون برای پیدا کردن معنی انسان در جهانه خب، وقتی که یک سالک یک انسانی که در جستجوی این مسئله هست رسید به چنین کسی که گویا او, او پاسخ یا پاسخهایی تونسته به این برای این سال پیدا کنه و تونسته در بتن و اعماق یا ورای این زندگی غریضی و جانوری حقایقی مسائلی و عرضش های فوق زندگی برای زندگی پیدا کنه به او میگن پیر به او میگن مراد به او میگن امام مرشد روحانی آموزگار معنوی بشه میگن خب. این مرحله در واقع بس گفت سراغاز کاملا جدیه سری سلوکرفانی است برای همینه سری سلوکرفانی گام به گام با مفهوم پیر و مرشد و امام گره خورده است نداریم کسی که بگید که من عارفم و سیرسولوی عرفانی دارم آه ولی پی مرادی امامی من ندارم و در آلم بیرون داره یا باست در آلم داشته باشه با معروف یا سیرسولوی که او خزری هستش آه خزرویه یعنی راه داره یعنی یک امام باطن داره بیبی داره که در ارتباط با او هست و راه رو مرحله مرحله به اونشون میده او رو تعلیم میده یا هم یک امام و یک پیره کاملا دنیاوی هستش که در قلبوتین بشار داره زندگی میکنه. کنید یکی از این دو حالت ها هستش ایز نداشتیم که بی بوده باشه یا امام قیبی داره امام خزری داره به قول من یا امام بیرونی داره خب بنابراین باید گفت سر و سهر فانی با یافتن کسی به نام پیر یا مراد به طور رسمی کارش آغاز میکنه رسمیت پیدا میک مثلا مثل بچه چطور در دوران کودکی مهد میره آمادگی میره یا کلاس ها آزاد میره به درماتا باش کار میکنن و یه جوزه تفریاد در زندگی چی میکنه اینم هست و وقتی که در مدرسه ثبت نام کرد صاحب معلم شد اون وقت به اون میگن محسل محسل علم اینم کمتر از اون نیست زبیش باید به اون هست خب در واقع زمانی که اون معلم میاد درس دنیا بده دانش دنیاوی یاد بده به بچه و پیر درس روح میده درس آخرت رو میده درس معنویت میده او رو با روح خودش آشنامی میکنه. در اینقدر معلم مدرسه میاد او رو با علوم و فنون دنیاوی آشنامی میکنه تا راحت تر زندگی کنه و این راحتیم در خدمت همون در واقع همون حیات و حیوانی و قرائز بشر هست در هر حدی از دانشان باشه همین و آموزگار معنوی یا پیز در واقع وزیفهش اینه کارش اینه که صادق رو، طالب رو، محسل و طلبه رو با خودش و با روح خودش و با معنویت زندگی، با روح زندگی آشنا کنه با حقیقت زندگی آشنا کنه <تص> وقتی که گرسی پیری یافت اولین مسئله در واقع باز گفت اولین وادی که قدمام هم بندی کردن میگن وادی اول وادی طلبه یعنی تو پیری رو پیدا میکنی، و حالا رسما طالب معنویت میشی طالب روحانیت میشی شی طالب خودشناسی میشی طالب شناخت حقیقت میشی که بخوای ببینی که در پس پرده این مادهات زندگی چه خبره چه اتفاقی داره میفته خب این وادی طلب رو اسم دیگه هم گذاشتن وادی شوق اسمش گذاشتن و وادی انس اسمش گذاشتن حالا مهم نیست وادی طلب به من اسم وادی اول رو میشه گذاشتن وادی پیریابی رسیدن به پیر اسمش میشه گذاشتن خب بله شوق هست طلب هست این وادی رو برخی اسمش رو وادی مستی و جذبه روحانی هم گذاشتن خب طبیعی یک کسی که عمری دنبال جستجوی حقیقتی بوده با رسیدن به یک پیر در حقیقت برست که بنابا احساس میکنه مخصود خودش رو پیدا کرده خب این رو در سجبه های الفانی هم شده همیشه که در نخستین آشنایی یک مرید با مراد خودش شور و مستی هست جذبه روحانی هست و برای بسیاری وادی اول ماندگارترین خاطرات دوران سوید سلو هست بقول معروف مثل ماه اصل زندگی میمونه این شبوی آشنایی مثل دوران نامزدی در حقیقت میشه گفت میمونه و یه ساله در حقیقت در این مرحله مثل نامزدی میمونه دازه میخواد با پیر خودش آشنا بشه مده واقع میخواد خودش رو کاندید کنه برای این راه خب بنابراین مهمترین مسئله مرحله اول این وادی اول پیشناسی است امام شناسی است که آیا این فرد آیا یک مرشد و پیر حقیقی آیا خودش راه رهپیموده است راه رو طی کرده حالا تا پایینش اون بالاخره تو این راه بوده است راه رو میشناسد یا نه یا یک کذاب یک دروغگو هم دیگه همیشه شناخت به طوری او در طور درجال‌ها هم بوده نمیشه. خب مهمترین سوژه وادی اول پیشناسیست خب این که چطور میشه پیشناس هر با در این باره زیاده نشانه های حقانیت یک پیش چیست علاقه منم دم در جالیت چیست بخصوص در که ما الان زندگی میکنیم از بس فیلم بازی کردن ریاکاری شخصیت های سینمایی بروز دادن و دوغل مصفتی در بشر راه شده اینه که هر فرمول امتوبیدی واقعا داره قابل اتنان نیست تنها چیز قابل اعتماد برای سالک که آیا این پیر حقیقی و بر حقی هست یا نه همون حس و احوالات خودشه یعنی اون مصدی روحانی و قلبی و اون جذبه و شوری که به مرید دست میده در مقابل با پیر با پیر این خودش بزرگترین سند و حجت حقانیت و درستی پیر بودن این پیر است همین سادگی یعنی قلب گواه میده و گواه و حجتی بهتر از این هم نداریم یک قلبی و روحانی تمام روح تو به تو میگه که این همانی هست تو که دنبازش میگشتی این رهنمای تو همینه معلم تو در این راه اینه در داشتن پیل یعنی داشتن یک آموزگار روح در حقیقت چطور انسان برای هر کاری معلم میخواد مشاور میخواد، رهنما میخواد، استاد میخواد بنده دیگه شما نیا کن مختصن تو این دور زمانه شما برای متخصص تغذیه داریم برای غذا خوردن باستی مشورت کنیم کتاب بخونین مطالعه کنین برای سلامتی جسمت بستی به پزشک رجوع کنین یه گوردان پزشک شما واسه شماره تلفونش داشته باشه که همیشه بهشون برید به ای رجوع کنیم. این ازین جای دیگه که برای بهداشت روانی و آرامش اعصاب و روانم هر کسی دو تا سه تا مشاور که دارن خب ببینین مشاور امور اقتصادی داری مشاور امور سیاسی شما داری مشاور امور زناشویی داری مشاور امور تربیت کودکان داری و الی آخر مشاور معلم علاوه اینا همه معلمین زندگی کردنی دارن منطبع معلمین زندگی مادی و حیوانی غریزی هستن اینا که راحت تا زندگی حیوانی تو برگزار کنیم. همه اینا همینه یا مثلا شما میرید 10 تا سال تو مدرسه 10 دانشگاه سی سال تحصیل میکنین برای چیه در این تحصیلات شما هست را تحصیل کنی آه؟ از آنجا که دریافت میکنی چیزی در ورای زندگی و با برای تو واقعی نمیگذاره که همه اینام برای پول سر کردن و پول نخص سر کردن و خوشگل تر کردن همین زندگی حیوانی و قریضیه توی پزش میخوای بشی، مهندس میخوای بشی، فیلس میخوای بشی، عاشق میخوای بشی همه برای همینه در واقع مزو گفت این تحصیلات چطور انسان برای تن خودش برای حیوانیت خودش شما اینقدر تحصیل میکنه بله خب این دو زمانه 20 ساز تروایم بازی تحصیل کرد و برای ادامه زندگی برای تحصیلات تا در با ده ها مشاور و استاد بست داشته باشی تا بتونی همین زندگی حیوانیت رو ادامه بدی ولی ایشت طوره که برای روح خودت برای معنویت خودت برای حیات اخربی و جابدانه خودت برای باطن خودت این معل خب این خیلی بده خب یعنی خود همین ن در واقع میشه گفت کسی که در جستجوی یک استاد روحانی نیست در واقع واسه با گفت واقعا این از زندگی جسته وانی هیچی دیگه این نخواسته و این بسیار تأصف باره چنین چیزی و این یک نیاز انسانی داشتنه یک پیر نشانه حقانیت پیر گفتیم مهمترین سوژه وادی اوله و سوگه اخوانیه و یک بار ترین نشانی هفتگانیت پیل تو اینه که به تو شور و شغل و عشق معنی میده تو رو مست میکنه تو برای اولین بار مستی باطنی و روحانی رو تجربه میکنی این بزرگتری هجت هجت است. و چنین کاری رو با هیچ تخصص و رشته و کاری دیگه نمیشه شما در جای دیگه نمیسونی به دست بیاری و باز این قضیه با, با کنم در همین حد کافیه دیگه بس نکنم در مورد پیر شناسی مربوط به وادی اوله که وادی بقول معروف نامزد بازیه یک مریده مرحله طلب اسمش گذاشتن شوق گذاشتن که در این مدت فرد هی شروع شوق و علاقه و عشقش به معنویات به معرفت به علم باطن به علم روح به حیات طبیعه بیشتر میشه تا جایی که دیگه اون پیل میگه خوب حالا بیاد یه درشون کنیم شما بالاخره بودی دیگه نگاه کرد دیگه شما این کار هستی یا نیستی از اینجا وارد وادی دوم میشیم که بنده اسمش رو میگذارم وادی بیعت چه این اسمی دو تقسیمات مراحل سلسل بگرفانی من ندیدم، نرخوندم جای نشنیدم من از من بهترین اسم و وادیترین اسم اینه این اسکوزارگیه البته سلیقه ایه، از آر اسمیگه میشه خوزارگیه به نظر من مخصوسترین نام وادی دوم بیعته بعد از وادی طلب و شوق و جذبه یعنی چی؟ یعنی بگون تمام شد. حالا بس بیایی کنی در این را دوران کودکستان تموم شد دوران مهد تموم شد پیش درستان تموم شد حالا بس بیایی رسمان نام کنی در حالی قرار بیایی اخت کنی سبت نام کنی رسمان این مرحله وادی دوم است. خب ببینید محور همه این مراحل سیر و سلوی در واقع دو میوار بیشتر نداره. این مواردی دو میوار وجود داره. مسائل مربوط به پیر و مربوط به مرید. کل این مراحل سیر و سلوک دامش با موعظات رابطه پیر و مرید هیچ چیزی نیست مثلا. هر انسانی در زندگی اَطی چه‌نگه دار میکنه انسانی بی‌دوست ما نداریم هر کسی همسر داره به فرزند داره، شغل داره، نمداره. این هم اشتغالات داره، و بسیار بعیده خیلی کم شاید نباشن واقعا ها کسی که دوستی نداشه خوشایند دو که این دوست بخرم دوست محرم اسوانی کوبال دوست گرما بو گلستانی داره واقعا یار قاره انسانی بی دوست واقعا بسیار بعیده باشه و همه انسان ها با بدون هر کسی میتونه زندگی کنه ولی بدون داشتن چنین دوستی بعیده بتونه زندگیشون ادامه بدن این هم یک نیاز روحانی و انسانیه انسان. در حقیقت پیر ها دوست حقیقی هست که تو را به سلامت و عزت و به حق خودت و به خدای خودت میرسونه به حیوت زندگی خودت دباغه تو رو میرسونه پیر دباغه برای همینه در ادب عرفانی ما پیر رو میگن دوست به پیر دوست گفته میشه واقعا همینطوره اسم عرفی و عادی دوسته دوست دوسته متقابل اعتماد دوستی که تو محرم اسرار روح و روان و دل و باطن توی و قرار با همدیگه به حقیقت برسید پس این بیعت در واقع به این معناست که آقا جون این دوستی ابدی است بیعت کردن یعنی بیعت دوستی جاودانه بستن در حضور خدا در واقع پیر و با هم دیگه در حقیقت واسه که با خدا در نزد خدا عقد میکنن هم دیگه رو برای خدا همدیگر هم دیگه رو عقد میکنن برای خدا همون تو گوزن هم, هم دیگه رو عقد میکنن برای نیازاغلشون آها ولی نه در اینجا اینا پیوند انسانی و روحانی میبندن ها که ما برای خدا باستی بام دیگه دوستی کنیم برای خدا به سوی خدا تا دیزارو با خدا به تجربه ما میدونه واقعا نیاز انسان به داشتن یک دوست عنوان محرم اسرار، دوست نیازهای ذاتی انسانه و ترابه انسانی که یک دوست محرم اسرار نداشته باشه بسیار بعیده باشه خیلی کم. خیلی امیاد دوست یک نیاز وجودیه ببین هرگز همسر نمیتونیم محرم اسرار بشه دلائش تیار صحبت کرد برای اینکه در جایی که نیاز هست اعتماد به حداقل میرسه همدلی رازگویی به حد دقل میرسه خود نیاز ها مانه گازیه هست انسان به نظر دوستی که هیچ نیاز قلیزی حیوانی به اینانه نیست هیچ بیزینس و تجارتی نیست میتونه درده درد کنه یعنی هیچ منفعتی نیست که مانع این رازگویی باشه امسان اصلا پیش همکارش نمیتونه رازش رو بگه پیشه رئیسش پیشه همسرش چه بسا از رازش برلیش استفاده بشه مثلا اصلا امکانش نیست برزبون نمیاد اصلا این ای کاره و یکی از مهمترین واقعی که در رابطه بین مراد و مرید هست اینه که راز در میان نیاد راز. راز راز در میان آوردن اون سرمایه مطور محرکه خرکت و سری سلوک ارفانیه رازی که در میانه بینه مراد مورید میاد در وسط میاد برای همین هم که کلی عدبیات ارفانی ما ادبیات اصراره اصرار نامه است در واقع اینا همه اسرار وجود انسانه اسرار دل و جان و روح انسانه این اسرار از اصرار قریضی جانوری شروع کن تا میریسه و روحانی تا اسرار الهی. می‌بینید انسان بدون دوست به هیچ جایی نمیره اصلاً حرکت نداره کسی که دوست نداره پیر نه دوست دوست هرجین یعنی خصوصیه و مردم مراسم مراسم نداره اصولا این آدم انگار دل نداره انگار دلش تعلق نداره لذا حرکت نداره چون در واقع با دوسته که دل به جون میاد و زنده میمونه کسی که دوست نداره در واقع گفت دل درش موردش چه بسا. یا می انگار انسان دل دل میشه تازی که دوست نداره در واقع میشه گفت رابطه دوستانه و راضی دل گفتن اون حریمی هست که دل رو زنده نمی داره ما اینجا فقط تیتراژ میخوام بدیم چون میخوایم هدف اینه که مراحل سیر رو میخوام اینجا کنیم در اجزایش ما مطلب زیاد افسادیم و مطلب زیاد نمیشدیم یه مطلب ما تو قرآن داریم که زیاد از این آیه ما استفاده کردیم در همین با در هست فرمود که در بهش یک نفر علی بیش به از فکر داشم که ای دوست تو چطور شد که خوشبخت شدی و به بهش رسیدی میگه که لازم بود که من با یک دوست صدیق و پاک و مؤمنی با هم رفاقت کردیم و با هم بهشت رسیدیم اینجا آ دوستان مثلا اونجاست باز بلافاصله بقیه آیه اینه که همچین در جهنم یه دوزخی از یک دوزخی دیگه سوال میکنه که ای بدبخت چه تو به من روز به سر شما شدی سر اینجا زال وردید یه با انسان ابله جاهل کافری مثل خودم رفاقت کردم هرتون سر از جه بود اون کسی که یه دوست مرا استار داره مطاد دوست کافر و شقیه هست به جهنم میره این با مقطه به ترس کسی اصلا دوست نداره. چرا بر که یه جایی رفته بالاخره حرکت کرده که به دو زخهده رشد انسان ها دو نوعه یا رو دوزخیست دو یا راهشته بهشتی است یا انسان به ابلیس میرسه؟ که یک کمال شرارت و کفره یا به خدا می که کمال روح و قداسته انسانی بی دوست هیچ حرکت معنوی باطنی انسانی نداره حتی حرکت رشد دنیاوی هم بسیار بیده که داشته باشه حتی رشد اختصادی رشد سیاسی کسی که دوست نداره اصلا هیچ رشد نداره یک زندگی حقیر تنگ و تاریک خریخوکی داره کسی که دوست نداره از که دوست نداره به هیچ جایی نمیره این خودش یک رازه وجود انسانه و راز این هست که هیچکس تنهای تنهایی به هیچ جایی نمیره انسان تنهایی هیچ حرکتی با ارزش و بزرگ ندارد. در میتونه بکنه نه در خودش میتونه بکنه شیه حالا خودش این یک بحث دیگریست یک روانشناسی دیگری رو میتلبه اللذش. ولی این یک واقعیت تجربیست حالا لدش نیه انسان تنهایی بزدل میترسه با دوست قدرت میگیره از او حمایت میگیره حالا این بله این نمیتونه یک میتونه باشه بز بنابراین پیر پاسخگوی این نیاز ذاتی انسانی انسانه داشتنه پیر کسی که با او به بهشت میری به سوی خدا حرکت کسی که با او یک حرکت جوهری و روحانی رو با او آغاز میکنی و با همدیر گام بگ م داد پیکان سعی را, را یه بار تیم کرده. لفته داده شد. حالا داده نه تا یه جایش رفته اهل راه راه شناسی، راهدانه، هدی، بلد، بلد راه در واقع میشه گفت کارمون صلاح. و هر کسی به بخواد دستش میگیره میبره. خب، او در میان مردم هست پس راه راه راهیست، باطنی، جوهریست، روحانیست، جغرافیایی نیست. خب، فعلا از این باز که بیشتر از این مکس نکنیم تا به برگه سواد <تصال> <arı> گفتیم وادی اول رسمش گذاشتیم ما وادی پیریابی یا رسیدن به پیر وادی دوم رو گذاشتیم وادی بیعت یعنی رسمیت بخشیدن به این رابطه عهد کردن در حضور خدا بیعت کردن دست دادن که با همدیگه تا خداش میریم و به پایان دیگه واسو رسیدیم اینو بدونیم رابطه ببینید مراجع مذهبی رابطه متقابله از جنس رابطه معلمی که سر که لا دست میده نیست کلی نفر میده یکم یاد میگیره مصرف میکنه اصلا اینطور نیست یه رابطه کاملا متقابل مبتنی بر دل محبت و یک انس روحانی است <تصفيق> حالا در این وادی دوم که گفتیم بیعت بعد از اینکه بیعت انجام میگیره در فرنگشیه در واقع این هم بیعت با امامه اون تو امام زنده نه امام قاید. پیر امام هنگ. یکی از مسائل اساسی در این وادی دوم برای مورید موزله خدمت. خدمت خدمت به پیر برخی این خدمت رو در وادی اول قرار میدن. حالا اینا خیلی مهم نیسته این فقط منظور طبقه بندی و مرحله کلی میخوام نشون بدیم اینا طبقه بندی کلاسیکی و فیزیکی و هندسی نیستیم یک کیفی، یک راهی. ما میخوام مراحل کلیش رو میخوام نشون بدم. خب این خدمت چیه؟ خدمت در فرهنگرفانی ما داریم مثلا فلان عارف مثلا در فلان خانقا یا زاویه و کنجی بود مثلا کسی رفت طلبی ارادت کرد و به او گفتن که شما هزار روز بایستی در اینجا در حضور کنپیر بایستی بمانی و خدمت کنیم باستان ها هست ولیشن هم واقعیت داشته مثلا میگفتن شما هزار شبانیوز باستی پشت در مثلا اتاق مثلا پیلت بایستی فقط آفتباش راب کنی مثلا کفش روز رفت کنی آمون کنی وقت مثلا خب این چرا چه بوده این مسئله بسیار مهم و بردشیه خود همین امر اساس رابطه بین فیلموریده یعنی مرید رو به پیل نزدیک میکنه این فاصله روحی روانی رو به حداقل می‌رسونه. میرسونه مرید در واقع میشه گفت نزدیک میشه به پیرش تا با او اونس پیدا کنه در با خلق و خوش ها با همون هیکلش با همون فیزیکش انس پیدا کنه چرا برای اینکه پیر اگه پیره تمام خواص روحانی و معنوی و اون شفاعت و کرامت در همون هیکلشه. در همون هیکلشه. چرا برای اینکه در معرفت عرفانی و مخصوصا معرفت شیعی ما این حقیقت رو داریم که اون کس که تو میگی پیر یا امامانیه کسی که تو بستی در جمال او به الله بستی برزی و, و هیکل او آینه یکی تو با خداست هیکل او در واقع میشه گفت حیکل پیر یه استثنایی است در معرفت عرفانی و فلسفه اشتاق این بحث تو بختی در کردن که یک عارف ها صاحب حیکل نوریست بس هیکالوندی رو ما زیاد کردیم در نوشته اینجا ما اینجا حالا فقط اشاره میکنیم هیکالون نوریست یعنی در حقیقت اون رایی که از خود تا خدا قراره یک ساله تهی کنه این را تماما در وجود کده پیله با باید خوبی و باید دیگر خب یه صحبه کنم بایده کنه راه سرسولی گرفانی راه رسیدن از خود به خداست از خود تا خدا نه خدای آسمان از خود تا خدا در خود سیدن از خود تا به خدای خود در آینه وجود پیر پیر در حقیقت باز کفت آینه است پیر آینه است که تو نشون میده تا نهایتا ذاتت رو بعد تو آشکار میکنه و تو جمال ذات خودت رو در پیر دیدار میکنی به این گلالا با ها به وصل با ذات خودت مییسی با خدای خودت پیر در این نقش آینه نمیداره پس تو بایستی پیر رو به عنوان آینه برای خود قرار بدی یعنی بعضی پیر رو آینه بودن پیر رو برای خودت بستی محقق کنی. یعنی بستی رو برای خودت آینه بکنی چرا؟ برای اینکه تو آلودهی به هزاران آفتهای فکری و نفسانی آلودگی ها، جهل جه، جنون، سوی زن ها،, ها این ها هجاب بین توی رابطه تو و پیر توی از طریق خدمت این هجاب رو پس میزنی به یک نوری پیلت در واقع تو نزدیک میشی خدمت یکی از خواستش اینه که تو رو به اون با پیلت میرسونی در واقع محرم اصالش میشی دیگه تو در واقع باستی بر وجود پیل وارد بشی در حقیقت به بیان دیگه در مرفت ارفانی مورید باستی نایتا در پیل فنا بشه فنایی که شیخ نیه ولی بازی بر پیر خودش وارد بشه بر وجود پیر خودش بازی وارد بشه خب بازی باشه، خب باز بس بازی در وجودش پیدا کنه دیگه برای همین سلات عارفانه در وجود پیر انجام میگیره. سالات صلب سل به مفهم وارد شدن یعنی وارد شدن بر وجود پیر این ضابطه بازی گفت صلوات مفهم خاص چیه هستش برای همین در فرنگشیه کسی که امام نوار میگن سالات هم نذاره برای همین ورود تو ورود به حریم حق پیر حریم حق پیر بیت الله است ولی این به واسه وارد بشید باز واسه درش رو بیایید باز واسه بندگویی پیشون در نزدیک شده باشید تو پیدا کنید درش رو در وجودش واسه پیدا کنید این از طریق خدمت انجام میشه خدمت در انسان بسیار چیزای زیادی داره یکی از انسان میشن اینه که یک فرد او خیلیا فقط به هوا و حوص میان، میون بلکه میون به کلی مرید سرق از ثمره کرامت وجود پیر به یک شوق عرفانی میرسن خب ولی واقعا نمیهام وارد این دو بشن ببین ترفیع میگه خدمت کن دو روز که ما نمیذاریم که ول خالا آقا منو خوش ببورو چیکاری بیکاری ماقا ما که ما برده این مگه مگه ارباب آقا چیکاری ما کاریش واسه شما بکنی خب بله این حرف ها هست. با خودی همین خدمت تکلیف اون پیر مرید رو دو روزه روشن میکنه که اصلا این کار هست یا نیست ببین این راه وقتی اول گفتیم وقتی طلبه این طرف واسه با تمام وجودش با واسه طلبه حضی شده باشه تا این اینطوری خدمت که ایچی جونه شمازه رو بسر ما کتفال گفتیم اینا رو بریم به مرحله سوم تا وقتمون نشده پس وادی دوم شد وادی بیعت یا وادی خدمت اسمش وادی اونسو احتمادا میشه گذاشت اسمشو میشه وادی مرحله پیش شناسی هم میشه گذاشت ها مرحله که بتونه مرید در به وجود پیلشو بذار کنه چرا برای اینکه پیر بابه باب الله است یعنی در به خداست همونطور که بعدی میدیم باب خب بریم بابادی سوم مرحله سوم که ما اسمش رو گذاشتیم مرحله حرکت یا هجرت یا بگران دیگر مرحله اطاعت محض در بیعت دیگه در رابطه با این پیرو مورید انجام میشه یکی از خب ببین بیعت کسی میره عقل میکنه یا قراردادی رو با هم دیگه دو نفر که امزا میکنن خواهیسه تعهدات متقابلی هست دیگه مفادی هست دیگه یا در اینجا هست یکی از مفاد این بیعت و این عقل این هست که پیر از مورید تعهد میگیره در حضور خدا که از او بیشون شرا اطاعت کن به این میگن در مورد راز و فلسفه بیتونوش رایی اداده اطاعت مازی هست کردیم فقط اشارتاً بگیم که اگر قرار یک فرد از خودش به خدا برسه به قول حافظ هجابی خود انسان نیست انسان خودش هجابی بینه خود و خداشه تو خود هجاب خودی برخیز از میان خب این خود باید از میان برخیزه و برندگر این خود هزاران تو داره پردهاش بسید دریده بشه تا انسان به خدا برسه در خودش برای همینه این راه کلن تماما راه باطنه راه سیر سلوک عرفانی سیر و سلوک و سفر از این خود هیکل منه تا ذات خود منه که خدا در اونجا در انتظار منه برای همین این راه رو میگن سلاطن مستقیم در فرنگ اسلامی مستقیم یعنی کوتاتن راه بین خود تا خدا خود از اینجا تا واسمان فصلش نزدیک تره یا از خودم بخودم قوم علومیه دیگه از خودم بخودم کتا تای فاصله از صفره خب پیل یکی از خدماتی که ایران و مایی که به مرید میکنه اینه که به تدریج این منش رو درش میگیره یعنی این هجاب رو از درش میدره اه؟ این منیتش رو ازش میگیره یعنی این اراده منی و خودش رو ازش میگیره و او رو از چاه طبیعت منیت خود اگه اگر بخواد با چونو چرا اعتاد کنه در واقع از خودش اعتاد کرده یعنی پیر برای هر امری که به مرید می‌کنه اگه علتش هم بگه فلسفه و سیر باشه بگه یعنی فرد باسی راضی شده باشه از منطقی که این کار درستی بکنه خب اگر راضی شد که این کارو بکنه با غرومتوی خودش از خودی اعتاد کرده فقط خودش رو پروارسته رو گردن گفتار کرده ببین حالا که ما اینجا باسی خود رو کنیم نه روزی که انسان تلاش باسی خودش نازوگ نالدک و نازوگتر بشه اینقدر نازوگ بشه تا سوراخ سوزن بگذاریم بعد بیشون و شرا بودن از ارکان واجبات سلسلوک ارفانی در رابطه با پیر و موید هست گفتیم وادیه ثوم رو ما از توش باشیم وادیه. حالا اون بیعص شد این خدمت انجام شد اون انجام کرده حالا با همدیگه مدتعه شدن حرکت کنن بایستیم نا؟ حرکت اساس این حرکت اطاعت ها, ها جای پیر میره موید باست دیگه داستان پیرو مورید در قرآن همون داستان خضر و موساست موسا اومده بود به علم زدانی برسه دیگه اومده بود یه ساله که ارخانی بشه خب دیدیم که اطاعت بیشونوچرا نمی کرد دیگه همه هر چونوچرا میکرد چما آخر سرین نتونست با خضر بمونه تواقع سر اطاعت بیشونوچرا در قرآن همون سر خضر و موساست و سبر بودن بر پیر و بیشونوچرا هر کاری که میگه بکنه و هر جا که میده باش بره متحده خب به حرکت هست این حرکت در حقیقت مهمترین وحشش همون هجرته ده. که ما در قرآن هم داریم هر جا آمنون هست یا یه لذین آمنون حاجی رو در واقع با گفت کسی که پیلشو شدید برای اولین بار ایمانش قلبی شده انسان بی پیل انسان بی امام ایمان نداره یه مسلمون هده اکثر یاده مذهبیه ایمان یعنی دینش قلبی نشده چرا برای این که ندیده خوب در واقع باید گفت مقام دینی اتقادی یک سالک ایمانه که در قرآن مستقم ترین پایی دینی برای همین خدا خدا هم هر عمدی که تو قرآن داره مقدمش که مومنان دیگه مسلمین نیستنگه آه؟ مومنان هم یعنی اطاعت میکنن بیشون چرا؟ خب، یکی از یه که خدا میکنه می کنه هجرت از چی؟ هجرت از تمامیت خویش چون انسان قادر از خوش بگذاره دیگه این هجرت هم صورت باطنی داره هم بیرونی داره هجرت در صورت بیرونی هجرت از نژاد، خاندان شهر، ای ایار که بزرگترین بستگی و قلوزنجیر معنوی انسان هست هجت ما تو قرآن مفصل داریم، ستاه ای داریم تو سوره توبه. بنابراین از تو سوره توبه را از یه لاز من این واجیسوم سوام رو باج توبه هم میذارم. بیان قرانی هم داره. ها؟ برای توبه و توبه از شرک ها و آغاز اخلاص با سی هجرت کرد. ما میدونیم تو قرآن هجرت چه اهمیتی داره. به ما گفته میشه که امر کنم به مؤمنان که هجرت کنن، ما هجرت اینها بدون که مومن نیستن. به اینا دیگه نکن. کی با اونم نمیشه زن مریضه هوا گرمه پام نمیدنم لقه غذا ندارم سوار شم اینا قبول نمیشه تو سری زوبکلی این داستان هست هجرت پایبرانان بس رو گفت هیچم نداری واس رو گفت بعد وقتی سو اون حرکت یا هجرت یا توبه سر میشه گفت جهاد اکبر هست جهاد برایه نفسانیت خود که گردن گرفتینش نجات پرستی انسانی زن و بچه پرستی، فامیل پرستی، ننه بابا پرستی، شهر پرستی کندن از شهر و دیار و فرهنگ و تاریخ و گذشته خود این کندن واجبه برای اینکه انسان قراره به خودش برسه دیگه کل را رسیدن از خود به خود آنجه که انسان را از خودش بیگانه کرده چیه؟ یکی از گردن کلوفترین، قطعوترین و سیاهترین ظلمانی ترین هجاب ها هجاب خاندان و نجاد و نجاد پرستی انسانه که انسان از خودش بیگانه کرده یا ببینیم پس که سرسول کرفانی تماما دینی تماما اسلامی تماما حقن خداست من در وردی نیست هر کسی چیزی من در وردی وارد کرد باستی به شک کرد داره. تمام مراحل سرسول کرفانی نه به نلش در قرآن حضور داره تماما قرآنیست هیچ چیزی بدعت این کار نبوده و نیست